ساقی،, ساقی به نور باده برف رو جام ما متر بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم ای بی خبر ذل شرب مدام ما به نام خدا با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان خدمت همه دوستان روز بخیر عرض می کنم و در ابتدا با آمار شروع کنیم یه مقدار بررسی آماری داشته باشیم روی نتیجه تحقیقاتمون خب دوستانی که اصلا فعالیتی نداشتند دستشونو بلند کنن خب باشه دوستانی که دوستانی که فعالیت داشتند دستشونو بلند کنن دوستانی که نتیجه مثبت از تحقیقاتشون گرفتند اند بلند کنن نتیجه مثبت از نتیجه مثبت گرفتن دیگر. یعنی تحقیقاتی که کردن دیدن نتیجهشون مثبته یه بار دیگه درشون رو بلند کنن بله خیلی ممنون خیلی مزشکر خب، یه چند تا گزارش و بعدم رفع اشکال و بعد از اونم بریم ادامه بحثا و صحبتا رو داشته باشیم از کنم خدمتتون یه چند تا گزارش خوب و که نتیجه تحقیقاتمون هست داشته باشیم خب اولین رو شما میخواهم بدین بفرم مختصر و مفید که دوستان بدونن که رو چه موردی شما کار کردید و نتیجه گرفتید جزیاتش اهمیت نداره فقط میخواهم ببینیم که رو چه موضوعی کار شده و نتیجه تحقیقات خب خیلی ممنون خب بفرمایید. اصداد قبل از هر چیز یه مصربی رو بهش برخوردم که البته فکر میکنم اینو باز آگاهی به هم کمک کرده در تیه این هفته اصداد به یه که در واقع خوب ما داریم باش کار میکنیم و رسیدن یعنی جا داره قبل از هر چیز اینو مصرح کنم و واقعاً از نظر من انتخاب این کلمه بسیار هنرمندانه و با دقت بوده کلمه بیرون ریزی هست من به هر کس که این بیرون ریزی رو میگم استاد این کلمه باعث میشه اصلا آرامش ذهنی میگیره حتی اگر ذات جسمی داشته باشه روحی داشته باشه میدونه که این دیگه تموم میشه و این همین کلامه بیرون ریزی یعنی دیگه این بهش کمک میکنه این یعنی دیگه داره از ذهنش میاد بیرون و خیلی بهشون کمک کرده که واقعا جای تقدیر داشت قبل از شروع صحبت بعد استاد میخواستم درازه با مورد مادرم بگم که چون رو مادرم کار کردم و مادرم روز شنبه رفتم برای عکس هر, اه, که این کارو انجام دادن دو بعد میرفتن دکتر دکتر گفته اصلا چون دست سفت بود بعد دست نرم شده بود و زیر دستم حس میکردم که خیلی حس میکردم رگاش یه جوری داره میشه بعد عکسی که گرفته بودن دکتر گفته که اروغ لنفید باز شده و این کاملا بهش کمک کرده بعد گفتن که این سلولا یه حالت دیگه این اون قسمت های لنفاوی گفتن یه حالتی داره به خودش میگیره که دیگه الان مادهان خودش این اتصال اینا رو انجام میده بعد مورد دیگه یکی از در کنار استاد گردن درد بود که انجام دادیم بعد بس یکی درمود لمفی بله. بود بله خودده لمفی بعد یکی گردن درد بود است که برای داییم کار انجام دادم و بلا البته اون خوب شد بعد یه مورد دیگه مربوط به نوراhti بود که یه خانومی داشت واسه اون به ایشون خیلی کمک کرد واسه یه خانمی دیگه ای بود از دوستان که اینها البته خودشون مثلا به صورت حرفیت ایتون جوداگانی کار انرژی درمانی انجام میدن و گفتن ما می خوایم کار شما رو مثلا ببینیم هماهنگ کردیم یه ساعتهایی رو انجام بد واسه گفتن که شب من یه صدایی رو شنیدم حالا در کنار نوراhti جسمی بیرون ریزی گفتش که من یه صدایی رو شنیدم که عسات این صدا به من ابراز علاقه میکنه دوست شب بعدش ازش خواستگاری کرده دو شب هم از زراخش خب حالا باید بینید که واقعا بحث شوخی و دستاندازی بوده یا نه واقعیتش اینه که خب به هر صورت یک نتیج کار عملی رو با یک که نمیدونیم بگیم خواب، رویا توهم چگونه از نمیشه واقعا قیاس کرد. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خوب، اگر جانم، لفرمون. استاد، من از هفته پیش روی پچه دیابتی کار کردم. این تو این یه هفته خیلی نوسان قند داشت. بعد از دیروز به من خبر دادن که تشنر شدید کرده بیمارستانه. بعد از دیروزم قندش بالای 300 هرچم انسولین می‌زنم پایین نمیاد. این علتش چیه؟ پرون یعنی بله، تشنج؟ آره ببینید آقا میتونه پرون خودتون چجوری جوری تجزیه تحلیل می‌کنین؟ من احساس کردم که تشنج خودش میتونه پرونریزی باشه. خب هست یا نیست به نظر شما چون که شما کاری نکردین. پس این مسئله و بعد قضیه اینکه که به سلا ممکنه در قضیه دیابت و کار روی لوزالمده شما گزارش های متفاوتی داشته باشید یک گزارش اینه که قند میره بالا و بعد میاد پایین طبق همون نموداره که با هم بررسی کردین این که این بیاد بالا و بعد بیاد پایین یه بالایی و بعدش پایین بعضی ها هستن که نه بدونه که بره بالا اصولا شروع میکنه با... ما این همون طبق قاعده کلیه و حالا باید شما ببینید که در ادامه قضیه چی میشه و بعد بینید که سابقه تشنوش داشتن نداشتن اصلا نداشتن من فاهمیله. من خودم بچه میدونم و هر صورت این زمینه در او این زمینه نهفته هست این زمینه رو داره مم. چون نمیشه بی خودی چیز بکن خب اگر در این رابطه باز گزارشی هست که گزارشی چند تا گزارش بله برشی دوستاد من یکی از بستگانمون کمردر داشت تصدفاً اومد منزل ما و چون من با همسرم دوتایی توش کلاس شرکت میکنیم همسرم شروع رویشون کار کردم زمن که ایشون داشت کار میکرد میخواست که ازش گزارش بگیره میگفت خیلی احساس سبوکی میکنم احساس میکنم یه ذره دارم انگار رو از دو زمین مثلا بالاتر قرار میگیرم حال احساس میکرد که اون انقباضی که تونهایی کمرشش از بین داره میره تو همین شرایط منم هم بهشون به ایشون پیبستم. یعنی شروع کردیم دوتایی بهشون انرژی دادن. می ببینم اصلا کار ارتباط. درستیه ارتباط دادن. می ببینم کار درستیه اصولا و بعد که من به صلاح کارم تموم شد به صلاح دوتایی که کارمون تموم شد ایشون احساس کرد که خیلی کمرش بهتر شده از اون حالت انقباس خارج شده و احساس ریلکس بودن میکنه. بعد چون اصولا الادم خیلی عصبی هست من شروع کردم به اصلاح به ناهیه سر ایشون یه مقدار ارتباط برقرار کردم بعد بعد از یه مدتی که کار تموم شد ایشون گفت من احساس پریشانی بیشتری می احساس میکنم آشفته شدم رومن چی کار کردی شما؟ خیلی هلی. اثر بدی داشت اصلا شما مثلن که چون ذاتا خیلی آدم خالصی نیستی اثر به اندازه اثر همسر نبوده همسرت خیلی اثرش گفت اینشون نبودن؟ اطباقا برادر من بودن ایشون خب حالا من خدمتون بگم اجازه بدین اجازه بدین یکی اینه که اشکال کاریشون در چی بود ولی یه اشکال کاریشون در این شد که گفتن من اومدم بگسرش مگه همچی داشتیم توی صحبته که داشتیم مگر اصلا همچی حرفی داشتیم در ولی اول بله شما همسرتون کار کرده شما میتونستین کار کنین 100 نفره دیگه از این مجموعه میتونستان چیکار کنن روی این قضیه کار بکنن و در ولی دوم حالا شما فکر کردین به کلهشون ارتباط دادیم ولی نه اون همون ارتباط رو شما اعلام شده ارتباط بغرا شده خب چی اومده رو احساس اختشاش پریشانی اختشاش و پریشانی اومده رو یعنی هیچ اشکالی نبوده این اومده رو و از اینجا به بعد طبق همون قایده و قانون چی میشه؟ کاسته میشه کم میشه درست شد؟ پس هیچ مشکلی در واقع نبوده حالا چون توضیحاتی که شما به ایشون میبایستی میدادید توضیح رو ندادید خوب و حالا به هر صورتی ایشون نمیدونسته که چه در این مورد شمایی باید توضیح رو میدادیم که قضیه از این قراره و حالا به ادامه گزارش رو ازشون دریافت میکردیم خب یک موضوعی که جانم پس آمارمون رو اینجوری من متعرضی شدن که دوستان این موضوع آماری رو درست نمیان یعنی این کلاس اینجوری نمیدونم چرا خب دوستانی که اجازه بده ما این آمار بگیرم اینجوری برین جلو جدا جدا دوستانی که افسردگی داشتن و افسردگیشون تحت شاقه را گرفته نجه مثبت تا اینجا دارن در یا رود دیگران کار کردن یا رو خودشون دستشونو بلند کنن بله بله حالا شد دوستانی که روی آرتروز کار کردن دستشون رو بلند کنن نتیجه مثبت گرفتن دستشون رو بلند کنن آرتروز من اینجوری بگم که خب آرتروز میدونید یه مسئله مکانیکی ابسوردگی در بود روان اینجوری تقسیم تقسیم بندی بکنیم که یه جنب بکنیم برای اینکه دوستان بدونن چی به چی میشه افراد زیاد میل ندارن که توضیح بدن اینجوری که من احساس میکن ما 4 تا 4 بخش زن روان، جزب و حالت چهارم در مورد زن مثل مشکلات توهم، وسواس، دو شخصیتی و چند شخصیتی و از کنم ترس های غیرمنطقی به عنوان مثال در مورد روان، افسردگی، استراب، دلشوره و اینجور چیزها این, این مسئول زن که به این صورت به دوره تششعه دفاعی ارتباط داره در مورد بحث روان اینجا الان دیدیم که این دوتا به این دوره ارتباط پیدا میکنه افشدگی استراب، دلشوره، دوستانی که استراب و دلشورشون بهبود پیدا کرده، درشونو رو بیارن بالا، بله، دوستان که تازه اومده رو. یعنی استراب و دلشوره اینا تازه اومده رو. خب ببینید بس اومده رو یعنی در واقع داره این روند رو چیکار میکنه؟ تی میکنه. درست شد یا نه و بعد از این مسئله ترمیم است که پیدا میشه و مسئله است که به صلاح انجام خواهد شد در مورد بحث جسم هم که دیگه یک لیست بسیار مفصل الان آرتروز رو مثال زدیم و در این مورد آرتروز که مثال میزنیم میشه یک مثال بیماری که صرفاً مکانیکی یعنی اگر که شما این مورد رو ترمیم داشته باشین در واقع درمان در واقع نوعی ترمیم دارید و حالا تو به مباحث علمی در مباحث علمی فرادرمانی در اونجا که از زبان علمی موازدرها رو دنبال خواهید کرد متوجه میشیم که ترمیم به چه منزلی است و به چه منظور است مثلا در مورد پوکی استخوان در مورد آرتروز کسی پوکی استخوان داشته تو این مدت؟ تو داشتین؟ خب، حالا این نمونه ها نیاز به ترمیم داره یک بخش دیگه ای پس اینجا به طور کلی از در جسمی ما بر میخوریم به بحث ترمیم پاره دیگه ای از مشکلات است که در اون توده وجود داره این توده شروع میکنه به محو شدن یا کوچک شدن یا از اینجا ماجره ها خوب مثل فیبرو مثل نمیتونم تومور کسی داشته تو این مورد کار کرده؟ خوب کار نجزه چی بوده؟ برای خودتون بود کاملا عکس قبل و بعدشو لط بکنید برای ما بیارین همه دوستان که بود حالا یا رو خودشون یا دوستان دیگر روی, روی پروپوزال که داریم برای وزارت پیداشت میدیم این کیس ها رو لط بکنن دوستان به ما بدن که ما در اختیار پزشکی پزشکیمون قرار بدیم و اونها روش برای تحقیقاتی که داریم با وزارت بداشت بتونن ازش استفاده بکنن. زمنن پزشکان، روانشناسا، روان پزشکا داروسازا، ماماها و نرسا، کادر پزشکی برای جلسات پزشکی مون و برای دوره های پراپزشکیمون که انشالله قبلا داشتیم بعد هم خواهیم داشت دعوت بکنیم در دورای تخصصی فراپزشکی شرکت بکنن دعوتشون بکنیم تلفن، آدرس مسائلشون رو اینجا اعلان بکنن خب اینم از این موضوع پس در پاره دیگه از این مسائل ما با تغییر توده تغییر تغییر در بافت رو به رو هستیم و در این تغییر می بینید که یه زایدهی یه تودهی فرق نمیکنه این زائده ممکنه استخوانی باشه ممکنه نمیدونم از هر نوعی باشه و خوشخیم و بدخیم و اینا رو نداریم و حالا میخواد تمور باشه می‌خواد هر تودهی که باشه ما تغییر در توده رو به داریم بعدش تغییر در جریان داریم خب، چیارم، بفر بفرم، بفرم بله. بله بله کسی کار کرده در مورد سکته مغزی اتفاق افتاده باشه بعد شما کار کرده باشید این بهبود ایجاد شده باشه کسی نداریم؟ خودتون کار کردین؟ در درصد درصد، ادامه بدید شما میاید بالا یعنی این تش... بفرمایید. خو یا 10 مرتبه برم به اصطلاح بیرون روی داشته اصلا خواب خوبی هم نداشتیم. بله بله. بعد از اولین شروع ارتباطش یواشواش که اصلا میگفت شب‌ها خیلی راحت تا صبح میخوابم بله درسته. جمعه با من صحبت میکرد خیلی خوشحال بود گفت چهارشنبه پیش پزشک هم رفتم. چون قرار بود بعد از مدتی این رو عمل جراحی کنه. گفت پزشک به من گفت اصلا آثاری از سرطان نیست. بعد داروی خارجی خیلی زیاد گرون قیمتی هم که بهش میداد همه حمرم عوض کرده و خیلی ایرانی داده با دوز پایینگو حتی من اونها را هم دیگه استفاده نمی کنم علم. بله این مدارک رو بله مدارک رو داضیده باشه خب بعد تغییر در توده و اینها تغییر در جریان تغییر در جریان الان در عموده لند و خب اینجا شما شنیدین در مورد جا عکسشو برامون بله عکسشو بیارین ببینید ما تجربه داریم مثلا فرض کنید که رگ قلبی که الان من مادر یکی از این دوستان که اینجا الان اومدن رفتن خب رگ قلب 60 درصد گرفته که بعداً توی جیده بعدی گرفتگی عروق قلب نیست و همین ایشون لو از کار افتاده خب هران به سلا قند خون و مسایلشون وجود داره آلرژی هم داشتن که اونم مرتفع شده و از کنم خدمتون که این مسلاشه بعضی موقع تغییر در جریانه مثل همین بازشدن لنگ، بازشدن به سلا، رگ قلبی و اینها تغییر در نشانه خب تغییر در نشانه یا در سینتوم بیماری تغییر ایجاد میشه یعنی بیمار میگه که من مثلا فرض کنید در روز ده بار نمیدونم اینجوری میشده فرض کنید مثل همین نمونه نمیدونم هر وقت بار اولام میکردم اینجوری میشد و نشانه از بین میره خب خوب نمیتونستم بخوابم حالا خوب میخوابم یعنی اون نشانه ای که بوده چی میشه محو میشه و خلاصه کلام نشانه میره حالا اگه بریم آزمایش کنیم میبینیم که یه تغییرات حتما اتفاق افتاده مثل فرزن همینجا نمیشه که تغییر مثلا چیزی اتفاقی نیفته ولی تغییر در نشانه ما چیکار کنیم داشته باشیم این امکان پذیر نیست اگر اینو بدونید اگر نشانه عوض شد حتما اتفاقی افتاده دقیق بکنید حتما اتفاقی افتاده که این شده مثلا فرض کنید در همین مورد که ایشون در مورد سکته مغزی فرمودن ده درصد بهبود پیدا کرده توی یه جلسه چند جلسه؟ پنج جلسه یعنی تقریبا مثلا میانگین هر جلسه دو درصد بهبود پیدا کرده این دیگه شوخی و تعارف نیست باید یه اتفاقاتی بیفته که اثرش اینجا ظاهر یا رو بدن حالا کجا اثر گذاشته داشته باید یک اتفاقاتی بیفته تا یک بخشی که مدتها از کار افتاده بوده حالا به کار بیفته این دیگه بازی و شوخی و تلقین و دیگه نمیدونم این حرف دیگه نیست بله شما شما چی بوده؟ من دستم 20 سال خب 20 سال تا 30 ساله 30 ساله؟ خب, سال تان... خب ببینید. بعد از سی سال بوری دیگه تاندون دست بله در این صورت شما می بینید که این دیگه از اون مسائل به ترمیمی هم تقریبا میشه گفت مکانیکی، یعنی خب بوری دیگه تاندونه و ارز کنم خدمتون که حالا یه گزارش بدین که همه دوستان به سلا مطمئن میشن از این قضیه چون از ما سوال میکنم میگن که خب این تاندون بوریده پاره شده حالا روش کار کنیم یا کار نکنیم اینم جواب این دوستان بلی. سی سال من تاندون دستم از اصاب دستم کشیده و اسواس اندارم یعنی صناحی دستم خوب شدم. یعنی چیز عجیب حالا یا... اون دستتون رو میکروفون بده این دستتون رو, رو بلند کنیم ببینیم که <تصفح> بل... باوره. <تصفح> یعنی بل... خودم نام. نمیدونم نمیدونم بله بسیار خوب همه م... کار میکنم درد نمیگیره و خیلی بله باورم نه بله. نمیدونم بله حالا یک موضوعی که هفته پیش هفته پیش با هم صحبت تردیم راجب عصب صانوی دوم یادتون از دوزی به کاو دختره صحبت کردیم راجب کانال و این حالا آمارش رو میگیریم در این موره سیستم عصبی ثانویه الان عکس می‌گیرن چون تاندونش پاره است ولی کاری که میکنه هیچ پزشکی نمیتونه توجیه بکنه که چه جوری انجام میشه مثلا ما داریم که خانم پزشکامون با نمونه غت نخا کار کرده حالا ما کار خودمون رو کاری اصلا نادریم کار کردنشون از این نای غت نخا بودن ولی می نشستن. بعد از مدت های مدید که تکون نداشتند حالا میشینه هر که همه نگاه میگن که ما نمیدونیم که این چجوری میشینه چون بلغه رزاب 2 تا 4 تا است دیگه این سیم کشی اگه غلط بشه دیگه چیزی نیست بنابراین سیندیا باید خدمتتون بگم که این سیستم عصبی ثانویه یه جراحی خاصی رو اینجا اعمال میکنه در چیز علمی داره نظر ما منطقه خب برنظر همینطوری بررسی کلی و عامی ممکنه بگن که همچین چیزی نمیشه ولی شما دستتون رو بلند میکنید الان شما اگر که خودتون به عنوان یک مدرک اینجا قرار بگیرید ما شما رو به جامعه علمی به صلاح شما رو عرضه بکنیم عکس بگیرن و شما دستون رو تکون بدین هیچ کس نمیتونه توجیه کنه که این اتفاق جوری میفت خب حالا عکس سابق دستون رو با یک گزارش از اون برای به ما بدین ما برای اون تحقیقاتمون به صلاح داشته باشیم خب پس تغییر در توده تغییر در جریان تغییر در نشانه این تغییر در نشانه تغییر در درد هم خب جزشه شما بدونید اگر کار کردید دردی افتاد بی خودی نیست یعنی اگر که درد هر کدوم از این نشانه ها تغییر ایجاد شده از جمله در درد شما باید بدونید یه اتفاقی افتاده که این بر اثر درد از بین رفته باید یه اتفاقی افتاده باشه تغییر در رشد آناتومی درد اضافه بشه قاعده کلیه که اول بیاد اضافه کنه بعد بیاد پایین. ببینید فرق نمی کنید نهایی چی شده ندیجه نهایی که شد ببینید اینجا ما الان کشیدیم و از روز اول هم اینو چیکار کردیم جز مباحثمون بوده گفتیم که یک ادهی به از این نمودار طبعیت میکنند یه یک نه از همین نمودار چند نفر این نمودار رو تجربه کردن یا رو با دیگران کار کردن؟ این نمودار... این, این نمودار رو چند نفر این رو تجربه کردن؟ چند نفر اصلا کار نکردن؟ من بینه من این آماره با هم نمیخونیم <تصفيق> <تصفيق> میدونید؟ این آمار این کلاستون با هم نمیخوره من فقط تا... نداریم اینجور کلاسی ها، یعنی تو حالا نداشتیم من چشمم عادت داره یعنی میدونم که این درسته وقت بلند میشه تکمیل میشه صد درصد یا نه این یه کلاسیه که تکمیل نمیشه نمیدونم چه سریت میشه خب <تصحنت> بمانه بله بمانه دالا بنابراین بنابراین ما میایم این ارتباط رو برقرار می‌کنیم میاد به اینجا میرسه معمولاً با چند نفر کار کردین؟ همه زیاد شده هم بالا مونده ببینید نمودار نمودار یعنی اصلا خوب شدنی تو کار نبوده که ما نمودار بیه روان روانتنی رو بکشیم بسیار خوب حالا ادامه میدین ببینیم که چطوری میشه چون نمیشه بمونمون بالا دیگه نیاد پایین خوب تغییر تغییر در توده تغییر در جریان تغییر در نشانه و مثلا فرض کنید که کسانی که با میگرین کار کردن میگرین کار کردین شد یا نه خوب. کسی با میگرن شد خب این ببینید این میکروفونو بچرخونید چند تا میگرن میگرن شد خب دیگه شد شد خب بله با میگرن کار کرد میگرن یکی از مواردی است که توجه کنید میگرن یکی از مواردی است که خیلی خوب جواب میده میگرن آلرژی آس خوب، توجه کنید میگرن آلرژی آس در آس کسی کار کرده نتیجه خوب بوده دیگه کار کردین خودتون نتیجه چه تو بود بهتر شدین خب اینجا بفرمایید. بفرماید ببخشیم استاد من راجع به میگرن میخواستم یه توضیح کوچیک بدم خدمتون یکی از همکارام میگرن داشتن من فقط بهشون گفتم ازشون خواهش کردم که شبه ساعت نه این ارتباط رو بگیرم و میگن دقیقا توی اون زمان فقط یه توضیح مختصرم براشون دادم و میگن توی اون ساعتی که ارتباط میگیرن دقیقاً احساس فرو رفتن سوزن توی ناحیه رو دارن الان حدوداً یه ویمای هست که یه حمله میگرنی اصلاً نداشتم و یه موردام پسر خودم بود که گلو درد شدید آرس شد بهش که معمولاً وقتی این حالت پیش می اومد من باید حتماً میبردم آنتی بیوتیک می‌گرفتن ولی اون شبی که ملای محافظ رو گرفتیم من با استفاده از عشایی کیهانی و البته با تماس دستم هم بود که <تصفيق> روی گلوشون گذاشتم دستم رو بله لمس کردیم بله لمس کردم این ناهیه بله. رو و بعد فرد و صبح به طور موجزاستایی اصلا هیچ اثری از این بیماری توش نبود ولی پوست صورتش فردا شب مثل حالت دوندون دون بله یکم من احساس می کنم همون بیرون ریزی بود بله داشتن دقیقا روی پوست صورتش و خوب شدن, شدن کاملا بله. ببینید به صورت اینطوریه و تغییر در نشانه تغییر در نشانه یعنی میگرین نشانه بود حذ شد آسم نشانه داشت حض شد درست شد یا نه؟ جانم جان خوب. خوب. بعد جلسه کلاس ما در بچگی آسپ داشتیم؟ در بچگی آسپ داشتم در بچگی آسپ داشتم بعد طوری که شش ماه شیش ماه من بیمارستان بستری می شدم و اکسیژن می رفتم بله. بعد اصلا آسپ به طور کل از بین رفت وقتی عصبی می شدم این حمله ها شدت پیدا می کرد از جلسه که آمدم کلاس حالا زمانی که میخوام بخوابم موقع خواب، انگار یه آدم دیگه یه موجود دیگه در درون من نفس میکشه صدای خسخسای عجیب نه نفس هم میگیره نه تنگی میشه ولی یه کسی دیگه داره اینجا نفس میکشه نفس های خیلی نامون هستم دفاعی میخواد خب، حالا بعضی از بعضی از بیماری ها مثل فرض کنید اینا گفتیم به دوره یه دفاعی ارتباط پیدا میکنه این و حالت چهار حالت چهار مثل بختک خب مثل بختک و مثل جابجایی به این ردیف و این ردیف به دوره تجشد دفاعی ارتباط پیدا میکنه ویروس های غیر ارگانیک خب بینه که میگه من احساس میکنم یه چیز دیگه اینجاست جا به جایی داره نفس میکشه یا چیزهایی که توش آثار توهم هست و این مسئله نیاز به تشش و دفاعی داره بعضی یا علت آسمشون علت بیمارشون ممکنه که ویروس های غیر ارگانیک باشه خب بعد اصولا در این مورد در این موارد نام بیماری اطلاق بیماری بر اون از نظر ما درست نیست چون ما به اون میگیم همچین چیزی وجود نداره اون میگه نه وجود داره خب نشد بیماری که خب ما میگیم که باید روز یه بار دست بشوری اون میگه نه خیلی باید روز هزار بار دستو بشوری خب من مریضم یا او مریضه چیه؟ هر دوتامون خ خب بنابراین نمیتونیم اینها رو نمیشه اینجوری فلوداهه گفت کی اشکال داره؟ فلوداهه امکانه این که بگیم مثلا در این ترس های غیرمنطقی اون میگه که من, من نهایت دقت رو به عمل میارم همه چیز رو پیش بینی میکنم همه چیز رو میبینم شما سعلنگاری شما بیخیالی خلاصه اینا سرش چیزه دست بیاقه هست یعنی مثل اینا نیست که بگیم خب نه بعضا مشخص معلومه اینا اصل دست بیغه شدن داره یعنی باید با اون دست بیغه بشی ما بگیم تو بیماری او به ما بگه تو بیماری خب اما اینم که مساله رو حل نمیکنه نهایتا در اینها ویروس های غیر ارگانیک نقش دارن که ویروس های غیر ارگانیک هم بعدا برامون ثابت میشه که همچی چیز وجود داره چگونه چطور تازه کار، همینا ثابت میشه برامون خب در این خصوص، حالا اگر جانم، جانم ببینید موضوع جا به جای درد موضوعی که از ما چیزی به نام جا به درد اصلا معنی نمیده، آقا نمیشه اینجا درد بکنه، بعد بیاد اینجا، بعد بره اینجا بعد بر اونجا، بعد بر اونجا کسی داریم این حالت داشته باشه؟ بله، بله، دیگه بله، بله، بله، بله، بله، بله بله دیگه بله بله بله بله بله خب خوب نداریم همچین چیزی، نداریم که درد، انظر پزشکی یه همچین چیزی نمیشه یا درستم یا درد میکنه، بعد یک دلم درد بگیره بعد اینجا درد بگیره، بعد پا زانم درد بگیره، بعد پام هم درد خوب، و هر حال این قضیه به و دفاعی مربوط میشه. و اگر که اینجوری هست یک موقع یک اتفاقی میفته که باعث چیز ما میشه مثلا فرض کن فرد اسکن میشه این اسکن الان اینجا یه علامت میده این اینه که من گفتیم جا جای درد یعنی کسی از بیرون میاد با یا با شما برخورد بکنه همچین شکایتی داره ولی یک موقعی شما ارتباط میدید همچین مسئله پیدا میشه اگر ارتباط بدیم همچین مسئله پیش میاد دو تا مثلا حالا توی این موضوع یک قضیه مثلا میبینید که اینجا اسکن میشه با درد یه علامت میده بعد اینجا هم علامت میده اینجا هم علامت میده و همینجوری چندین جا علامت میده علامته بر اثر اسکنه ولی یه نفر که دائم این گزارش داره خب یه ادهی هستن که میگن ما درد تو بدنمون جا به جا میشه و معمولا هم سر از کار اینا در نمیارن بیرون میگن ممکنه بگن فکر کنن که این خیالاتیه این فکر میکنه درده این تماروزیه این نمیدونم چیه هزار تا برچسب بهشون میزنیم ولی وقتی تشش شده دفاع بدیم بعدا میفهمیم که موضوع از چه قراره بوده زیارم بفهمید. بله اینا بله بله ما که به اصطلاح یا بحث ترمیم و نمی‌دونم این حرفا رو به طور کلی چیکار کردیم انوان کردیم خب حالا بفرمایید بله توهم همون اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی حالا اگه پارانوئید هفرنیک نمیدونم کاتاتونیک اینا فرق نمیکنه دیگه خب فرق نمیکنه هر گونه توهم شنیداری دیداری و هر عکس عملی که هست کلا اینجا گفتیم توهم که اطلاق کلی باشه و از اون تقسیم بندی تخصصی مثل اومدیم بیرون دیگه فرق نمیکنه هر نو توهمی یک کسی فقط احساس میکنه که یک پشت یه چیزی پست داره چه برنامه‌گردی میدینه چیزی نیست فکر میکنه که گاگای یک چیزی از بغل دستش راحت شد چند نفر داریم اینجوری خب بینید کم نیستن خب همه رو تو دوره تجرد شده باید زیارت میکنین که خب یعنی ببینید در این حد در این حده و حالا بعد دیگه وقتی میاشینیداری و دیداری و نمیدونم این صحبت ها دیگه سر جه خودش دیگه سادگی اینه که یه کسی احساس میکنه همیشه چیزی دورورش هست یه چیزی در پیرامونش هست درسته یا نه؟ خب حالا اینا رو در واقع مورد تقریبا میشه گفت که درصد بالایی ببینید آمار نیست خب بعد هم خوب افراد با این مسئله میسازن یعنی احساس مونه چیده پشت برمیگردین ها. ولی داره باش سالها میسازه اگر قرار باشه آمار بگیریم درصد بالایی به نوعی دوچار این توهم البته بعدا می میدونیم که توهم نیست ولی به نوعی دوچار این قضیه هستن بیش از هفتاد درصد هفتاد هشتاد حالا اگر مباحث یا بحث های جدیشو بخواهم بررسی کنیم شاید حدود 20 درصد نه واقعا مشکل دارم یعنی دوباره من دارم با مشکلشون به نوعی کنار خوب اگر جانم جانم سوالی اشکالی توی این رابطه حالا این کلیت قضیه بود که ما دیگه سوال چون بعضی از دوستان سوال می این اینم میشه اونم میشه ما اومدیم گفتیم که این مسئله رو داشته باشید. چی رو؟ در موضوع تغییر در رشد آناتومیک همین مثل بسیرا تو ترمیم خب بعد از جراحی ها میبینید جوش خوردن و نمیدونم این جوش چیزها سریعاً روخ میده دقت بیکنید یک موضوعی رو که باز اینجا خاطر نشان بکنم خاطر نشان بکنیم تغییری هست که راجع به انتقال عضو با هم صحبت کردیم گفتیم که حالا بعضی چیزا جلوگیریه جلوگیری از پس زدن مثلا خب جلوگیری میکنه از پس زدن چون اینو توضیح دادیم دیگه خدمتون گفتیم که عوض علا رقم این که تمام تعمیدات لازم به کار میبرن پس میزنه علتش رو گفتیم چیه؟ هم. عدم همفاظیه شعور سلولی یعنی یک موضوعی که باید دیده بشه ولی فعلا نمیتونن ببیننش هنوز نمیدونه این مسئله رو عدم همفاظیه یعنی عضوی که از یه جایی میاد میاد توی بدن این یه شعور سلولی داره اونجا یه شعور دیگه اینا با هم همخوان نیستن سلولی آگاهی از بله منطقه شعور بالاترش اینجاست اون اگه مرکز دستور میگرفته این از یه مرکز دیگه داره دستور میگیره کاربود ذهنی بخشی که توضیح شعور سلولی رو چیکار میکنه؟ اعمال میکنه حالا این دوتا وقتی میان این تحت مثلا یک فرماندهی بوده تحت یه ریاستی بوده میخواد به تحت ریاست دیگه قرار بگیره اینا با هم همخان نیستن نتیزتاً با هم نمیتونن همخان بشن حتی در انتقال خون در انتقال خون اگر انتقال خون حالا هر چقدر حجم بیشتره ناب هم تا مدت ها بیشتره و افراد تا مدتی اصلا حالو چیزشون ممکنه خیلی روبرو نباشه چند افرین تجزیبه رو دارن؟ بله بله بله خب ولی اگر که شما همون روز اول همون بعد از این مسئله ارتباط بدید این همفاظ شعوری ایجاد میشه این نابستامانی اتفاق نمیفته. یا در مورد انتقال عضو هم که توضیح دادیم حتما لازمه حتما این مسئله لازمه که همفاظ بشه و ذریع بیاد بالاتر دیگه حالا در مورد جوش خوردن و اینا تجاربی که ما روی عمل بایپس اینا داریم اینه که بعد از عمل جراحی زمان این نقاحت و دور نقاهت چی میشه کاهش پیدا میکنه ما این تجربه رو داریم حالا انشالله در آینده نزدیکم توی پروپوزالی که داریم اینا همه جداگانه تحت بررسی قرار میگیره در بیمارستان ها اینا همه قرار تحت بررسی قرار بگیره از طرف کمیته پزشکی مون اینا همه قراره مرده رو چیزه اینا قرار بگیره خب جانم میکروفونو اگر دوستان خیلی اون خب بفرمایید بفرمایید ببخشید من با یه بیمار سریع کار کردم بعد تعداد حملات سرش افزایش پیدا کرده و حالا این چیز طبیعیه با چیزش. یه بیمار سر بله سر خوب. بزرگ بعد تعداد حملات سرش افزایش پیدا کرده حالا میخوام اینم چون خیلی حملاتش بدین یعنی میخوره زمین جایش زخم میشه مثلا میرونم این قضایه تا که ادامه پیدا میکنه یکی پیدا. از قضایه که ما خیلی خوب ندیجه داشتیم در مورد اپیلپسی در مورد سر هست و از فرادرمانگره خودمون هستن بنمون که سرعی بودن از ده سال یا چند سال قبل بین خودمون یه تداری در واقع همین ماجره ها رو دارن در ابتدا به ساکن بعضی از بسلا این افراد دوباره طبق معمول تجیدها زیاد میشه و بعد شروع میکنه به کاهش پیدا کردن و در واقع نموداری ته میشه که اینطوریه خب یعنی به صلاح این چیزی رو که رخ میده به این صورته که میره بالا کم میشه و بعد فاصله بین تشنجا زیاد زیاد زیادتر میشه خب ما شیوه عملمون اینطوریه در این خصوص که نوار الکترانسپالوگرافی قبل چیزش هست درست؟ بعد میم باش کار میکنیم؟ و بعد از یک ماه یک ماه اینا دوباره یک ماه دو ماهالا بعد از اینکه هر روز باید ارتباطش هر روز داشته باشه میفرستیمش تو نوار نوار بگیره تغییر مشخص میشه دوباره کار میکنیم هر یک دو ماه این تکرار میشه و بعد نشون میده که بله روند داره به رو بهبود میاد بعد از حالا یک دو سه تا نوار میونه که عادی شده تایید شده و این موردو یکی از پروپوزالای خودمون که انشالله روشکار انجام میشه ظرف ماه آینده روی همین بحث بیماران سرعیه ببخشی بلده. من سوال داشتم من سابقه سردرد و دو هیچ وقت نداشتم ولی الان چند جلسه است که داخل کلاس سرم درد میگیره منطور نقاط مختلف سرم یعنی قسمت نیست یعنی از شروع کلاس سمت چپ سرم بود آره نمیدونم ماده پشت و همینجوری داره مثل سمت راست میره. اینو خودم نمیتونم تشخیص بدم. خب یعنی الان داره شناسایی میکنه. آره یعنی اینطور اینجا مثلا اینجا بعد اینجا, اینجا، بعد اینجا همینجوری داره یه چیزیه که داره میگرده و این نقاطی رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه و روش کار میکنه. خب آخه من چون سابقه نداشته وقت، یعنی سردرد نداشتم میکرن هم نداشتم بله توضیحاتمون چیه در موردهشون؟ خب این میره جز اون دست چیزهایی که ما خبر نداشتیم چند نفر چیزهایی رو نشونشون دادن که خبر نداشتن دستون بلند کنین؟ بله خب مواردی که من گزارش اینجا گزارش زیاد دارم ولی وقتی میشینن اونجا دوستان گزارش نمیدن خب مثلا فرض کنید که یه دفعه خبر میده که زیر بغل مثلا قده داره اشاره میکنه در حالی که تا حالا خبر نداشته و بعد این محب میشه میاد یه چیز دیگه یه چیز دیگه شما الان نمیدونید که وصلا چه زمینهای الان در ما موجوده چه چیزایی هست که مثلا یه ماده دیگه سه تاش در میاد دو ماده دیگه سه در میاد مثلا فصل میید که چی میدونه زمینه ط ابتلا به مثلا پارکینسون و یا نداره. چی میدونه نمیدونم زمینه ابتلا به برم بیماری رو داری یا نداره. ها؟ کسی میدونه؟ ولی اینجا شما یه آدمی اعتعاط برقرار میکنه در تشنوز جدیات میشه. خب این تشنوز یا دلیل اینه یا دلیل اونه یا دلیل اونه چند تا دلیل میدونونه داشته باشه؟ حالا تا حالا میگه که من ازا سابقه تشنوز حالا در عمرم نداشتم میدونید این اینطوریه همه مسائل رو نگفتیم که مال گذشته است بعضیا مال الان که در گیرشیم بعضیا سوء سابقه گذشته مونه بعضیام الان استعداد ابتلاع به اونو داریم خودمون خبر نداریم اونها رو اشاره میکنه میاره رو روش کار میکنه و منتفی میشه خب ببخشید من چند مورد داشتم ولی اولین موردم یکی بچه بعد بود بعد از اینکه کامش سوراخ بود عمل کردن از اتاق عمل که اونم بیرون فوری بردن تو ایسو. یعنی فوری رفت تو کما و من نمیدونستم شب که ساعت 12 ارتباط برقرار کردم احساس کردم تو بیمارستانم بله یعنی یه حالت خیلی بهم یه حالتی احساس کردم که داره اون از میره ولی با ارتباطی که برقرار شد، ساعت ست و چار آرامش گرفتم. صبح که تماس گرفتم گفتن از آیسی آوردم بیرون اتاق. ولی اون حالت چیزو تا ساعت چار بعد از او در خودم بود. و همینطور یه ارتباط دیگه داشتم با یه خانومی که زانوش عمل کرده بود، لیزر کرده بود ولی هنوز درد داره. ولی از اون روز به بعد هر شب با مستکه میخوابه بله از اون شب به بعد دیگه اصلا مستکل نکرده بله دیگه مستکل ولی این زانو درد و توی زانوهای خودم و نقطه رو احساس میکنم یعنی اون نقاطی که ایشون مشکل داره من الان احساس میکنم یا اینکه یکی دیگه از این عقب های ذهنی بودش روش کار کردم منو یه هفته است این کاسه مغزم درست احساس میکنم یه حالتی به وجود وقتی ارتباط برقرار میکنم ولی ایشون حالت بیرونزی فکر کنم الان به وجود اومده یعنی بیشتر تشنوش پیدا میکنه بیشتر حرکات ناموزون از خودش رای بله، میده ولی بله، بله، بله. این حرکات بیشتر رو من اثرات منفی داشته یعنی خودم مثلا به هرکی ببینید اعتمالا درس و باید جزوتون رو خوب بخونید در جزوتون هست یا انجام توضیح دادیم رو کسی کار کنیم رو خودمون کار میشه خب الان با اون یه نشان کافی نیست خب شما این که رو کازی سرتون کار میشه چه ربطی به اون داره چون همون موقع که ارتباط برقرار میکنم یعنی احساس سنگینی توی خودم می اون که کار میکنه روی شما کار میشه خب اما معلوم نیست که این ارتباط داری یا نه اگر این چند مورد اتفاق بیفته که آره عیناً اون وقت البته من حالا اس بدین لای محافظو من براتون دوباره کار میکنم مشکلی نیست مسئله نیست ولی من تذیه کلی دارم خدمت تو میذارم به طور کلی ما وقتی به ارو عقب مانده های ذهنی عقب مانده های ذهنی کار بکنیم واکنش هایی رو اونام که دیگه نمیدونید ذهن خلاصه یعنی ارتباط ذهن و مغز قطعه یا خیلی کمه یا ابتداییه میدونید که دیگه این مسئله نیست که بگیم تلقین یا حتف حرفام که میدونید نیست در واقع مثل بچه ها میمونن ولی بیرون روزی های خواهند داشت که از جمله اونا یکیش تشنج و اونها تشنج رو عمدتاً خواهند داشت خصوصاً اگه تششد دفاعی بهشون بدیم یعنی اونا تششد دفاعی رو حتما نیاز دارن خب اما الان اشکال نداره شما فرادرمانی رو تجربه بکنید ببینید چه نتاجه میگیرید در انتهای قضیه حالا انشالله در بعدها تششد دفاعی هم روشون تجربه برای از این که حالا از شده دفاعی هم سردر رو بردید و ماجره رو متوجه شدید در مرحل تششید دفاعی هم قرارشون میدیم که ببینیم که چی میشه داری ببخشی, ببخشی, ببخشی من میکروفونو شما فرمودین که روی کسی که کار میکنی روی شما هم کار میشه آیا دقیقا روی همون عضوی که نه نه آه. نه نه نه شما, شما به طور کلی همین رو من خدمتتون از کردم شما درمزه اسکن قرار میگیرید من رویشون کار میکنم ایشون سرشون داره چیز میشه من خودم درمزه اسکنم اینام که دلم داره خب یعنی الان این اسکانی که میشه لازمه من روی مثلا مدام کار بشه رابطه اصلا ایشون نداره چونم هم به من نداره من کار خودم صورت میگیره چون کار خودش خب اما اگر اینن موزه به موزه موزه باشه اون چیز میشه اون باید روی لای محافظ و اینا دوباره کار بکنید ببخشید دوستان. بفرمایید، بفرمایید. کجای؟ واسه من فرادرمانی من فرار درمانی رو حرکت اه... کسی از اقوام یا دوستان که تجربه کردن؟ پشت ستونن. من آقا میگم م. که بله پشت ستونین، بفرمایید. من هر کسی که این فرار درمانی رو تجربه کردم نتیجه مثبت گرفتم ولی روی خودم نتیجه برعکس منفی بوده مثلا چند شب پیش که قبل از خواب خواستم چون عینک استفاده میکنم خواستم فرادرمانی رو چشام امتحان بکنم ببینم جوابش چطور. بوده یه یهو که دستام رو چشام بودم نورهای مختلف یه نور آبی خیره کننده ای بعد صبح که بیدار شدم کلن دور چشمپلک های پایین و بالا کهیر زده بود یه ورم زیادی داشت قرمز شده بود بعد سه روز خوب شده که مجبور شدم کرتون بزنم و به مصرف دارو اینا کشی من رو خودم هر وقت امتحان کردم نتیجه منفی بوده شما اینو نتیجه منفی بوده؟ ما اینو همه که اینجا صحبت میکنی که خی... خیلی درد شریع داشت میدونم ببینید اولا اولا اولا گفتیم انتخابی این مرحله انتخاب نداریم شما در مرحل اسکن قرار میگیرید یا رو چشمی کار میشه یا رو نه گفتیم که به صلاح صرفا زوم نکنید خب اینو که گفتیم بهتون درسته؟ حالا شما کردید خوشبندی هم چی بگیم؟ شکر یه بالاخره جز اسکنتون بوده اسکن کرده و بیرونیزی لازم بوده مثلا کهیر، مثلا نیم چی، مثل حالا هر چی بوده، شما میبایستی اون رو ادامه میدادین. خب میبایستی اون رو دنبال میکردید ببینید که نتیجهش چی میشه. اگه قرار بشه تو علامتی ظاهر بشه، هر کسی بره کورتون بزنه که قدرت فوق کلیوی کلیوی اون ادامه چی بوده؟ همه رو 4 روز کار میفته میره به کارش. حالا به هر شما رو دیگرانم کار کردید، نجاتتون هم مثبت بوده. دیگه میبایستی در مورد خودتون می دونستید که اینجوریه حالا این بحرال عب نداره برای بعد به سلاح بدونید که چطوری باید باشه جنم بفهم خواهد من یه صالح مدتون داشتم در زمینه این که یه جمعیت کاری رو در نظر بگیریم که در محراز یه آمیل زیاناوری قرار داره و برای سلامتیشون هم مزره آیا در اون لحظه می به این جمع ارتباط برقرار کنم یا نه یکی از مسائلی که اینجا داریم حالا الان میایم میرسیم بالا بردن سیستم دفاعی بدن ببینید یکی از تجاربی که پیش میاد حالا در دورای بعد اینو بررسی می‌کنیم بالا بردن سیستم دفاعی بدن البته الان دوستانمون رو اچ آی کار کردن نتایج مثبتی داشتن من جهت اطلاع مثلا بگم خدمتون چند مورد گوی عب پزشکا همون روی HIV کار کرد روی ایدز کار کردن ندجه مثبت بوده خوشبختانه و انشالله در آینده باز از پروپوزال هامون رو همین بحث AIDS هم هست. چون ما در واقع آماری راجع به این قضیه نداریم امدتا کسانی هم که مراجع میکنن نمیگن ما نمیدونیم فقط به ما اسم میدن اسم میدن و بعد میرن ولی مشخصن خوشبختانه اخیران چند مورد کار شده نادید خوب بوده که حالا در آینده هم روش پروپوزال میدید به بالا بردن سیستم دفاعی بدن یکی از کارهایی است که توی این رابطه انجام میشه حالا این سیستم دفاعی بدن که بالا میره واکنش های مختلف در جاهای مختلف خواهیم داشت یه جا ممکنه جلوگیری از آلرژی بکنه یه جا ممکنه جلوگیری از دفونت بکنه یه جا ممکنه جلوگیری نمیدونم از چی تا چه موردی مد نظر شما باشه خب آیا مورد خاصی مد نظرتون هست؟ مثلا در یک کارخونه حساب کنیم که در معرض دودای زیان‌آور جوش بله، مثلا بله، هستن. بله، خب من میتونم از لازریوی اونایی که در اون زمان دارن این دودها رو استنشاق میکنن کمکی بله، باشم براشون با این اتصالی که باهاشون بله، میکنم. ببینید اینها در اون زمان به اصطلاح واکنش دفاعی واکنش بدن هم شرط دیگه که بدن مغلوب بشه یا بدن غالب بشه خب کمان که در همون محیط هم اگه 100 تا کارگره هستن یکیشون بدترین واکنش نشون میده یکیشون هنوز هم داره میره تو همون دود و دمومیا هیچیش نیست یعنی انسان این انسانی انسان این نیست که اگه یکی افتاد باقیان پسرش بیابتن یه نفر در در, درست در همون شرایط اصلا هیچیش نیست. هیچی نیست خب این نشون میده که بدن واکنش های متفاوتی داره. لذا این قضیه میتونه واکنش بدن رو به بهترین وچی سر و سامان بده حالا به بهترین وچی دیگه نمیگیم که نمیدونم اگر نا آیتاً سیانورم نمیدونم استنجاق بکنه هیچ چیزی نمیشه ولی میتونه وضعیت بدن رو به یک حد حد حساب خوبی ارتقا بده و برسون بس دیگه اینکه که در مورد ژنتیک، بعد ما چیزهایی که یه تداریبه که داریم بیماری های رو مثل دوشن ما داشتیم که به سلا اثر ژنتیکی رو در قطع کرده یعنی اصلا آنزیمی که باید بعد مشاهده بشه بعد از این مسئله مشاهده نشده خب مثلا در مورد دو تا برادره که دوشن داشتن در چند سال قبل 7-8-10 سال قبل مثلا کار کردیم بزرگه که 14 سالش بوده و در سید مبتلا بوده تا یه درصدی تشدید بهبود بدنی داشته اون آنزیمونا درون دیگه دیده نشده برادر کوچکتر که 8 سالش بوده میرفته که از حالا مبتلا بشه دیگه درون این آنزیمها چیه نشده حتی ما تغییرات ژنتیک داریم یعنی تغییر در به در این حد داشتیم که حالا همه اینا باب آزمایشاتی که امیدوار هستیم که در آینده پروپوزالاشو بتونیم بدیم و آزموش رسمی رو روشون آغاز بکنیم خب پس دیگه دوستان سوال نکنن که اینم،, اینم جنتیکه میشه مگه تغییر در جن هم حتی امکان پذیره و میشه و بیماری های جنتیک رو هم شما بیماری های جنتیک مادرزادی نقص کروموزومی نمیدونم هر عنوانی هر چیزی که هست صرف هم باید کنیم کار بکنیم نتیجه رو ببینیم الان در مورد عقب ماندگی ذهنی که کار شد الان بهبود هم مشاهده میشه یا نه فقط الان دوره بیرونیه بله که خب البته خود ما که مثلا 20 25 درصد ترمیم و بهبود و ما گزارش داریم و اینها مثلا هاشون میگن قبلا این چی رو نمیفهمیدن الان میفهمن قبلا روی موضوع خبر نمیکرد الان خبر میکنه و یک تغییری در هوش به سلاح هست داریم خب ساعت جانم بفرمید شما فردین توی این سیستم اصلا مردودی نداریم الان شما آمار کسایی رو میگیریم که همه کار کردن و اثر دیدن بعد تکریب ما عده ای که کار میکنیم نه چیزی حس میکنیم نه تغییری میبینیم اون چیه از کنم خدمتون که موضوع رو البته ما کماکان صحبت کردیم ما در مورد خود نتیجه مثبتی که افراد افرادی که کار کردن یعنی کار کردن نتیجه گرفتن چند درصد نتیجه داشتیم؟ چند درصد؟ پیشنهاد بدیم؟ چند؟ بگیم دیگه صد،, صد درصد هشتاد درصد هفتاد درصد ست درصد دیگه هفتاد درصد ولی چند درصد 90 نووت درصد خوب بیام این بر چند درصد هفتاد اجازه بدین درصد رو بگیریم اگه چیز مطلب هشتاد درصد خب شهست درصد دیگه 90، هفتاد، 50، چند؟ شست دیگه دوستان؟ خب، حالا ما همیشه حالا تا انتهای دوره که البته الان یه توضیح هم راجبش دارم شما به طور میانگین آماری رو که ارائه میدین من یه چیزی ازش کم, ب... کم میکنم هفتاد درصد افراد نتیجه مثبت اعلام میکنه یعنی رو 100 نفر کار کنیم 70 درصد نتیجه مثبت خواهند داشت چرا نه؟ بله الان من توضیمی میدم خدمت من همینو میخوام بگم خدمتون این در مورد اون دسته ای که ما میخوایم باشون کار کنیم اما در مورد این بر ما چند درصد بین خودمون میتونیم نتیجه بیاریم خب صد درصد یعنی ما مردود نداریم مردود نمیتونیم داشته باشیم نه تو تئوری خب نه در عمل در تئوری ما وصل شدیم به این شعور الهی خب نمیشه که به ایشون جواب بدن بعد اشون بگن نه نمیخوایم ایشونو ایشونو میخوایم اشونو نمیخوایم این نمیشه وقتی که اومدیم متصل شدیم باید هممون جواب داشته باشیم. لذا صد درصد لازمه که ما جواب مثبت داشته باشیم. مردودی نداریم و تا امروز مردودی قابل قبول اصلا نبوده و نیست. میمونه که اگر مثلا افراد افرادی که نتیجه مثبت نگرفتن رفع اشکال بکنیم. الانم. همین رو که به ببینیم که اشکال این دوستان عزیز چیه اولا جواب سوال دوست عزیزمون که ربطی به حالت ما نداره ما بیماریم فقط کنه یه نفر رو ویلچر نشسته فقضا کلشم کار می‌کنه این می‌تونه چیکار کنه می‌تونه کار کنه چون عرفان نظر بازیه درسه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صاب درد را به گوشه چشمی، گوشه چشمش که کار میکنه که خب، صاب درد را به گوشه چشمی اضافه کنیم. بنابراین شما میتونید یه سوئیچو بزنید یا نمی‌تونید بزنید. این سوئیچو که میتونید بزنید، یعنی میتونید جریان رو هدایت بکنید به سمت خب حالا شما خودتون هر مشکلی میخواید داشته باشید. اینجا وادی ای نیست که کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. اون وادی وادیه که طرف میگه من متخصصم میگن اول برو اگه متخصصی برو خودت درست کن. ولی اینجا ما که نگفتیم ما این کارو می میکنیم که این هوشمندی است که اگه نباشه ما کاری دستمون بر نمیاد. اون که انجام میده. هنر ما چیه؟ ما فقط یک گوشه چشمی، یه سویچی رو شما میکنیم یک کلیدی رو میزنیم مثل کلید برقو میزنید حالا شما کلید برقو میزنید آیا آیا میدونید که این برق چه جوری ایجاد شده آیا معادلات برق و بلدین خب و میدونید که این نمیدونم انیروگاه و اینا اومده شما کاری ندارید شما فقط رو میزنید جران برق میاد اینجا از روشنش استفاده میکنید درست شد ما نمیتونیم جنسش این حوشبندیه، نمیتونیم مسائلش، غذایاش نمیتونیم. میاد و استفاده می‌کنیم. درست شد یا نه؟ الان ما یه اشکالاتی که خودمون شخصا داریم تأثیری اصلا در این مسئله نداره. بعضی از این دوستانی که موفق نیستند، نشستند تا مشکل خودشون حل بشه. انصافا و وجدانا چند نفر داریم؟ بیشتر از ایناست من خواهش میکنم جواب درست بدین یعنی میدونی چیه؟ اجازه بدین اجازه بدین اجازه بدین یعنی این دوستان منظور اینه که اگه خودشون متوجه نمیشن گفتیم افسورتگی قفل ذهنی تشدد ذهنی منتظرن تا خودشون اول چیزی متوجه بشن بعد برن به یکی با یکی کار کنن یا مثلا بیماری دارن منتظرن این بیماری خودشون اول حل بشه بعد دارن کار کنن چند نفر وجدانن داریم که اینطوریه خب این یه اشکال قضیه یه اشکال دیگه قضیه جان بفرمایید ببخشید من می‌خواستم یه مطلبی خدمتتون عرض کنم پدر من عمل بایپس قلب کرده بود من اومدم اینو رو روش تست بکنم و یه ارتباط برقرار بکنم وقتی که اسکن کردم بار اول گفت هیچی احساس نکردم بار دومم باز دوباره گفتم یه بار دیگه بشینیم دهیات محیطمون یه مقداری هم شلوغ بود بعد پدرم بعد از این عمل ناراحتی افسردگی گرفت و یه مدتی هم دارو مصرف میکرد حالا نمیدونم الان مصرف می‌کنه یا نه یعنی. بار دومم هم همین جمله رو گفت گفت من هیچ احساس نکردم بعد ازش سوال کردم که هیچ جریانی نمیدونم هیچ اتفاقی تو بدنت احساس نکردی گفتش که چرا جریانی میومد تا آرنج از آرنج بالاتر نمیومد بعد گفتم می‌خواستم همین رو کنم که اگر مثلا افسردگی داشته باشه این پدیده توش طبیعی باید باشه دیگه بله دیگه اگه یادتون باشه تو تست که با هم کردیم تو تست افسردگی دیدین که مثلا میاد از اینجا اینجا قفل میشه میاد از اینجا قفل میشه خب انجام شده منتها اون فکر میکنه که منظور از ارتباط اینه که الان زمین و زمان و چه اتفاقایی بیفته خب این جریان رو ازن میشون مثلا بحثونید که یعنی هیچ بوده براشون خب در حالی که به صلاح شما اگر که عین قضیه رو خدمتتون میگو، شما رانمایش میگن ادامه میدید هم ابسوردگی حل میشد هم بقیه مسائلش حل و فصل میشد. بنابراین جانم جناب دکتر بفهمید یا, یا در من یا در بیمار یا در نه اجازه بدین سوالتون رو آی دکتر تکرار بفرمایید. میگم میکروفون رو استفاده بکنید ببخشید که دوستان بشنونن. این قفل ذهنی یا افسردگی در من نباید باشه یا در اون درمانگیر نباید باشه هم در من میتونه باشه هم در اون میتونه باشه نتیجه در تاثیر کار نداره اونم مشکلش حل میشه منم مشکلم حل میشه متوا اشکال میدونین چیه اشکال اینه که وقتی که من اینا رو دارم چیزی متوجه نمیشم توی یکی دو جلسه اول میگم چیزی نیست از حلقه میافتم بیرون طرف مقابلم هم میگه که نه چیزی نیست اونم از حلقه میفته بیرون یا دو میفتیم بیرون یا یکیمون میفتیم بیرون بالاخره موضوع اینجاست که ما بدونیم من هر شرایطی که دارم قفل ذهنی ابسوردگی بیماری تأثیری در انجام کار نداره من باید بدونم عقیده من اعتقاد من نمیدونم اشتیاق من تأثیر تو ماجرا نداره این انجام کار رو به هیچ شرطی ندونیم ما فقط یه شرط داشتیم خب ما الان ما فقط یه شرط داشتیم اونم این بود که خب این بود که ما حالا این فرض کنید که این من این تو خب این هوشمندی خب من یا طرف مقابل من فقط یه شرداش بی ترق باشی حالا الان یه اده دیگه مشکلشون اینه خب الان فرض کنیم میخواد با, این کار با ایشون کار کنی خب بل بفهم بله بفهمه کلامی که ایشون فرمودن در مورد پدرشون پدر من چنین احساسی میکد که یه نیروی اومده ظاهرا به نظر میرسه قفل در ایشون بوده یا اصلا در ایشون قفل باشه ربطی نداره به پدرشون ارتباط دادم پدرشون سه بار گفته من چیزی متوجه نشدم ایشون بیشتر پیگیر شده که آقا بابا مثلا هیچی گفته چرا؟ یه چیزی میاد تا اینجا خب <تصفح> داری معلوم میشه که این یکی دوبار هر حال. این, این نشون میده که جریان را افتاده که مشکل رو حل کنه پدرشون افسرده هم هست جریان اومد تا اینجا از اینجا به بعد چی بوده اون درسمون؟ خوب، قف بوده و شروع کرده این به کار کردن یعنی باید کار بکنه چند جلسه تا مشکل حل بشه پس هیچ مسئله و مشکلی نبوده در عرض حالا من, من افسردگی دارن یعنی تا زمان که افسردگیشون برطرف نشده روی موارد جسمیشون کار نمیشه توسط شبکه ببینید کار میشه ولی اون احساس, احساس نمی کنن. خب الان ما چند نفر بین خودمون بوده دستون که نتیجه گرفتن یعنی نتیجه مثبت برام میگیرن دستو بلند کنید خب این ذره ذره ذره چی شده ولی اون فرد مثلا فقط اورنج شه حالا اونم ما هزور آوردیم به شما گفتیم بابا شما کارتون رو بکنید وگرنه همون روز اول همین تعدادم هم میخواستن که در واقع چیه کار نکنن اگر که توضیحات ما نبود اینا هم کاری میگنند نجم الان چی بود؟ نگرفته بودن ببینید بنابراین این مسئله مهمه که ما در معرض قرار بگیریم چه متوجه میشیم چه نمیشیم درست شد به اجازه بدیم اون کار انجام بشه احساس در واقع جریان هست برقرار ولی من افسوردم مثلا فقط تارنجم احساس میکنم بله بله خب شما هم میبینید که مثلا تو اینجا متوجه میشین چون طبق درسی که داشتیم اون توزیع انرژی این میبایستی بیاد بالا بیاد بیاد بیاد و تا اون کارو چیکار کنه انجام بده طبق اون اصولی که با هم خب پس یک ایده دیگه هم مثلا مشکلشون این میشه که وقتی رو در رو هستن میخوان کار کنن متزلزلن حالا خودشونم متوجه هم شدن نمیدونم چی متزلزلن نگرانن این پام پا پام میکنن میشه نمیشه با چی میشه آخ اگه نشه چی میشه خب و بعد نمیدونم حالا اگه نشد مزخرم میکنه یا اینو میگه ببینید یعنی هی تو حلقه چه بیرون حلقه این دوستانه که اینطوری تزلزل دارن راه دور رو امتحان کنن راه دوره اسمو اسم و اسمه رو نوشتن اسم رو یه نگاه میکنن عده بدون تزعذلا باعث چون ممکنه یه عده اسم دوره را هم همینجوری وای حالا اعلام کنن میشه نمیشه نمیدونم میدونید اینطوریه واقعیت قضیه اینه یعنی که راه دور اسمو رو بدین بدون و بریم به کارتون برسیم بیاد بعدا نتیجه رو بپرسید بعد ببینید کار انجام شده چند نفر راه دور این کارو کردن نتیجه شده خوب به ب... ب... هر حال ب... یک نفر هم یک نفر هم بگه شده یعنی بس... بفرماده هفته قبل استاد موردی آشنا شدم خدمتتون که یه خانمی هستم تو آمریکا ایشون همو حس خودکشی و اینها رو داشتن که شما فرمودین فرادرمانی روشون انجام بشه من از طریق مادرشون یه اطلاعی گرفتم البته بازم یک طرفه این کارو انجام دادم مادرشون گفتن که یک ذره وضعیت روحیشون بهتر شده ولی نگرانشون هستن و خودشون برن اونجا که واسه حالا برای بیرون ریزی بعد اینا میخوان مواظبشون باشن ولی این همین یک طرفه روی ابسوردگی شدید ایشون کار کرده یه ذره اون دختر حالت بهتر پیدا کرد بله چند برای یه طرفه تجربه دارن که کار شده و نجی گرفتن استاد ببخشید من خود داشتین آی دکتر خب ببینید حالا به هر صورت میدونین چرا یه طرفتون ببینید آی دکتر یه طرفه میدونین چرا نجی گرفتین بفرمایید دکتر چند شب پیش با پسرم صحبت میکردم آلمانه بله ارزم با حضور شما که گفت سینم ناراحته رفتم فوتبال بازی کردم سینم ناراحته کردم دست داری سینم چشید خب ببینم چی ببینم بگو چی احساس میکردم گفت هیچ ارزم با حضور شما که گفتم خیلی من با خودم من صورت حلقه تشکیل بدم. آره یه طرف بل. بعد روز بعدش ازش پرسیدم سینم چطوره گفت بله بله خب حالا شاید مثلا الان دوستان توی یه طرف محفقتر در حالی که باید تو دو طرف محفقتر باشند میتونید علت چیه؟ محفظتن. چون محفظتن. یه طرفه تزرزول نداشتین نلرزیدین نترسیدین گفتیم خب من میگم دیگه اون که نمیدونه که <تصفح> <تصفح> خب حالا زمانی که دو طرف هم بتونید نترسین نترسین, نترسین، نلرزین و هر حال شما میدونید که یه دی رو در حد هفتاد درصد مشکلشون رو حل می کنید. اینو با هم به اثبات می نسید. بنابراین وقتی که می و مییل زییم و اینا خلاصه این حلقه تشکیل میشه نمیشه یهخور اشکال داره بفهمید ببینید اونم هر عاملی ببینید. هر عاملی که برحال فرد و از شاهد بودن بتونه خارج بکنه حلق تشکیل نمیشه خب بفرمایید مواردی که اتصال برقرار میشه خودمونم کاملا دریافته دریافت رو در همین موارد متوجه میشیم زر... حتما باید این دریافت رو متوجه بشیم خیل. خودمونم خیر. رو شما کار میشه ولی الزامن شما متوجه بشین بعضیا اسکن دارن متوجه میشن بعضیا نمیشن ولی در معرض قرار میگیرید بعد میخواستم ببینم روی کیسایی هم که بیماری ندارن میشه این اتصال رو برقرار کرد و بله میشه بله بله میشه میشه که ارتباط رو برقرار بکنید جانم جانم میشه ببخشید من روی یه نفر که کار کردم مثلا اول یه بار اتصال تلفنی دادم بعد اتصال از راه دور بعد مجددا که دیدمشون اتصال با هم برقرار کردیم من تو جزوه خوندم میدونم که مکان تاثیری نداره چون اصلا تواصل ما انجام نمیشه ایشون گفتن که من بیشتر حس میکنم به خاطر حضور شماست حالا من dedim ایشون اشتباه کردن ببینید معمولا افراد اینجا ذهنشون وقتی شما جلو چشمشون هستی خب متقاعد تره میگه خب بابا اینجاست دیگه خب یا چیزی رو نیروی داره یه نیروی هست یه چیزی هست اینو میده شما حاشیه فاصله بگیری اون ذهنن این مسئله رو بعید میدونه اگه برید اون بر خیابون میگه آقا از اون ور خیابون چطوری میخاد این میروعه رو مثلا اون, اون که نمیدونه این هوشمندی در آن واحد این ور دنیا با اون ور دنیا ارتباط برقرار میکنه هرچی شما دور بشی اون اون چیکار کار میکنه؟ اون بیشتر زهنش میره توی این مسئله که خوهارا چجوری میخواد از اون برای شهر اینو بفرسته بیاد اینجا از اون شهر اینو بده بیاد ولی وقتی ما رو روبروش هستیم ذهنش متقاعدتره مقاومت کمتره و نتیجه کار بهتر میتونه انجام بشه. من یه توضیح کلن روی این قضیه باز, باز میدم و یکی از دوستانی رو که خیلی قفله دعوت میکنیم بیاد اینجا تمام بگم که چیکار میخوا بکنم. یکی از دوستان قفل خودش رو اجازه اجهبدین اجه بین اجله نکنین اه نکنین حالا ببینین همه ق جدا ها نگگاهکنین. نا <تصال> <arı> nah, توضیح میدم که چیکار میخوایم بکنیم توضیح میدم خوب گوش بدین من یک بار توضیح میدم که بنده باید چیکار کنم یا کسی که جای من قرار میگیره چیکار باید بکنه شما چیکار باید بکنید هم بعضی شاهد بودن چیز جدیدی نیست حالا یکی که فکر میکنه که نمیتونه و نشده و اینها من میخوام بیاد اینجا و یک بار توضیح بده یعنی فرض کنه که ایشون یا این یا همه دوستان به صلاح در چیز توضیحاتش هستین یه بار توضیح بده که چیکار باید بکنیم بعد ارتباط برقرار بکنه خب ارتباط برقرار بکنه تا ما ببینیم اشکال کارش کجاست خب کی از همه قفل دره قفل دره ها؟ تشیب یاری، تشیب یاری، تشیب یاری. تشیب یاری تشیب یاری از کنم که این شما و این آم کوب دارینه. <تصفيق> خوب لطفا بالا. این میکروفونو به من بدین این یکی از یه <تصفيق> نفر، یه نفر، یه نفر، یه نفر, نفر کوپیه. میکروفونو به من بدهin. رو لط کنید بدین <صص analyse> <تصست> <تص <میت> بله خب ببینید قرار شد که میخواد یه لحظه پای من توضیح رو بدم شما خوب توضیح گوش بدین چون یه شما باید توضیح بدید به دوستان خب کاری که ما انجام میدیم اینه که در واقع من توی این وسط که کننده کارم یا ایشون که الان میان ما روزی آسمانی داریم طبق اون تعریفی که کردیم و اتصالی که برقرار شده کردیت پیدا کردیم حالا از کردیت خودمون میخوام یا یه نفر یا این جمع رو چگاه کنیم اتصال بدیم اتصال بدیم درست شد شرط من این بود که بیترف باشم شاهد باشم بیترف باشم نگم نمیشه آخه مگه میشه اگه نشه ایشومنو مسخره میکنه هر کدوم از اینا بگه ما رو میندازن یعنی بیرونه حلقه برای شما هم همینطوره شما هم بی‌طرفین نمیدونید هست یا نیست تا تست نکنیم مثلا که ما بگیم که این غذا رو میخوایم تست کنیم میخوام تست کنیم هنوم هم قاشق قاشقو به دانشو نزدیک نکردن بگه نه یاره شوره شوره شوره خب اینکه درست نیست که چون محققی خوب نمیشه که حنو ناوردیم بگه یا حتما تلخه حتما تلخه یا حتما ترشه حتما ترشه خب ایشون که تا تست نکنه نمیتونه که جواب بده که درسته خب این یه اشکال اساسی ماست ما تست نکرده میگیم همچین چیزی نمیتونه باشه ببینید یه اشکال عمده بابا تست بکنیم یه چند هفته روش کار بکنیم بعدا معلوم میشه که هست یا نیست خب بنابراین برای دوستان ما هم این موضوع باقی میمونه که بیترف باشند، تست بکنن ببینن چه نتیجه میگیرن و بدونن اگر بگن نیست انداختنشون بیرون خب حالا هستش چیز نداره اشکال نداره برای نیستش اشکال داره اما ما میگیم نبگیم هست نبگیم نیست خب لذا در این شرایط هر از عمل کنه نتیجه داره اینه که میگیم 100 درصد ما قبولی داریم و مردودی نیست درست شد یا نه حالا من از ایشون میخوام البته اگه لازم شد از یه آقا استفاده میکنیم که شما بدون هیچ فرق نمیکنید. ایشون تشریف بیارن این بالا حالا یک بار شما توضیح بدین که ما بدونیم که توضیح رو که میدین تشریف اینجا این میکروفونم خدمتتون یه بار همین توضیح رو که من خودتون چه شرایطی دارید. این دوستان چه شرایطی باید داشته باشند بعد شما ارتباط من میرم کنار شما ارتباط رو برقرار میکنید ببینیم که چرا نمیشه قبوله خب توضیح و اینجا من اصلا میام اینجا شما من میرم اصلا شما توضیح و بدین مداب شد نگین تریبون من رو نگیرین خب این تریبون ببینیم که این تریبون من رو اشخال تصاحب کردیم به این من الان احساس میکنم که خب به هیچی نباید فکر کنم ببینید اول خودتون چرا ما هیچی نباید بکنیم؟ خب یعنی ما فکرمون تحتیل یعنی چیه هیچی فکر نکنیم منظور چیه ما به همه چی فکر میکنیم اما در این لحظه که در این لحظه که شما میخواد ارتواط برقرار کنید در مورد این مسئله کار با هوشمندی شما چی میشید فی طرف میشید, شاهد میشید. خب این مینیمم میشه شما شاهد میشید نمیگید که من الان ارتباط برقرار کردم نمیشه نه میخوام بگیم میشه شما بگید میشه نه بگید نمیشه این شرط شما درسته یا نه یعنی شما نمیدونید ارتباطو میخواد برقرار بکنید میخواید نتیجه رو آمار بگیرید ببینید چند نفر ارتباطشون برقرار شده چند نفر نشده درسته این کار تحقیق دیگه کار تحقیق و آمار و علوم تجربی یعنی چی؟ یعنی همین یه دهی هستن یه نفر میخواید کار کنه آمار بگیریم ببینیم میشه یا نمیشه درست یا نه؟ حالا اما پیشنهادتون برای این دوستان چیه؟ این دوستان چی کار باید بکنن؟ فکر میکنم دوستان باید دستاشونو باز کنن چشماشونو رو ببندن و خیلی ریلکس خیلی راحت به اون چیزی که میخوام فکر کنن خب نشد ببینید پس... پس... اجازه بدین اجازه بدین. من بهتون قول میدم همه اون دوستانی که میگن نشده من دونه دونه بیارمشون اینجا شما صحبتها رو بکنم ببینید که اصلا صحبت ما نیست الان چقدر اختلاف داشت صحبت ما اصلا بس این بود که هرچین رو دوست دارم بهش فکر بکنم دستشون هم باز کنم بعد حالا عیب نداره دستونم باز کنم اشکالی رو اشکالی نداره ولی الان اومدم خوب خوب از بس عقب بودم خوب حالا به هر صورت حالا بعض شما بعض عقب یکی خواب بوده یکی اینجوری بوده <تصفح> خوب بنابراین ببینید بعض من عیب نداره بعضم عقب بودید این تو بوده اون تو بوده ببینید این دوستان من الان توضیح دادم از بحثم اگر عقب بودیم، من الان توضیح دادم که این دوستان ما فقط حالا چیکار میکنند شما میخواد یه تستی روشون انجام بدید میخوان اون غذا رو تست کنم. شما میدونید غذایی که ایشون پخته چه مزهیه؟ نمیدونید چیکار باید بکنید باید میل بفرمایید بعد اشاره نظر کنید که آقا این غذا خوشمزه بود بعد بود تر... تر... چه اشکالی داشت درستیانند الان ایشون میخواد برای شما یه ارتباطی برقرار بکنه. شما میدونید که ارتباطتون برقرار میشه یا نمیشه؟ نمیدونید. پس چیکار باید بکنید؟ باید شاهد بشین برقرار میکنیم. بعد از اینکه ایشون ارتباطو برقرار کردن ببینیم نتیجه چی بوده. درست شد یا نه؟ خب شما الان حالا حالا شما توجه کنید. میخواید ارتباط برقرار کنید. چه جوری ارتباط برقرار میشه؟ چجوری ارتباط جواری میشه <تصفيق> خب خب اجازه بدین اجازه بدین پس ببینید موضوع ساده کارو پس میبینید ایشون نمیدونه نظر نظر بازی که این همه راجبش توزی دادیم خب الان ایشون نمیدونن اما ابن نداره مسئله نیست رفع اشکال میکنیم برای همین هم رو خواستیم بیاد اینجا کاری که ایشون قراره بکنن یه بشکن بزنه خب بشکن که بلدیم من فکر میکنم که یه دونه رو بلدن ببینید ایشون, ایشون به مرز اینکه که یه بشکن بزنن ارتباطتون برقراره حالا این بشکن برای که دیگه نگن که بابا نمیدونم چی اینا منظور همون گوشه چشمه به مرز اینکه ایشون اراده کنن ارتباط شما برقرار بشه اون خواست و اراده ایشون یعنی سویچ یعنی بشکنه دادش شد یا نه؟ مشکل که نیست که سخت که نیست که خب حالا بنابراین شما این گوشه چشمو به این دوستان عزیز ما بندازین بعد ببینیم ندیجه چیه؟ خب هر موقع شما آماده بودید بهشون بگید بعد یک موضوعی که یک موضوعی که ما میگیم که خب الان آ آی بشکن شما گزارش اگر ازتون بخواهیم گزارشتون جاری میشه ما معمولا میگیم چشما رو ببندیم آیا بستن چشم الزامی بود؟ نه. نه چرا گفتیم چشمو ببندیم؟ نه. برای که چیزای بیرونی، محرکای بیرونی که حواس ما رو پرت میکردن ماشاءالله خودمون یه تعدادی. الان من سوال کنم، چند وقت تشتت ذهنی دارن انصافا؟ انصافن ها خب خب اصلا خود به خود افکارمون این وره، اون وره، اون وره و بعد ما الان وارد یه حریمی شدیم که تا حالا برای ما ناشناخته بوده. خب؟ خب. بله، این آمار درست بود. آره. خب حالا حالا الان ما که میگیم چشما رو ببندین حداقل این دوستان که تشدد ذهنی و اینا دارن دیگه حواسشون رو محرک‌های خارجی نره بتونن چیکار بکنن خانم حالا چیکار بکنن خودشون رو زیر نظر بگیرند خب پس کاری هم که باید بکنن اینه که خودشون رو زیر نظر بگیرن که چی بشه ممتنه؟ ممتنه؟ پیدا. که ببینن اسکنی که روشون انجام میشه این اسکن این اسکن چطوریه درست شد یا نه پس یه توضیح بدین خودشون رو نظر بگیرن بفرمی خب همینه <تصفح> <تصفح> که من گفتم بفرمی من خیلی قفل همی گفت خیلی <laughs> این دیگه از اون قفلای نه <laughs> <laughs> <بشکم هزن. laughs> <Nah>, از این قفلای کلید کامپیوتری هست که میگن به سلام مشکل بله حالا اما من این رو ندارم خب کار با حوشمندی انقدر آسونه ما بچه پنج ساله داریم بچه چهار ساله داریم که این بچه چهار ساله خب یعنی داره با این قضیه کار میکنه این اینجوری نیست این تصور خود ماست که ما قفلیم البته حق داریم این موضوع انقدر ساده است انقدر ساده است انقدر ساده است که پیچیده تری مشکل چیز دنیا به حساب میاد از سادگی خب این الان شما به مرز اینکه اراده کنید جریان اینا برقراره و این دوستان هم خودتون زیر نظر میگیرن من هم میرم اونجا برمیگردم ببینیم که شما چه دست و گلی آب دادین باشروع خب خیلی معموم مچکر دوستان عزیز. خب دوستانی که ارتباط رو متوجه شدن درشون رو کنن حتی که جای ما رو نگیریم خب دیدین که اگر ایشون درست مطابق با اینی که اینجا با هم تشک کردی انجام بدن امکان نداره یعنی ردخور نداره برای همین مدودی نداریم. حالا یکی از دوستان آقا هم تشریف از اون قفلای چیز میخوایم ما کامپیوتری تشریف کارین خیلی منون خیلی متعکریه دست به افتقالشون بزنیم بحثم بحثم خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی ممنون. خب من البته خواهش می‌کنم ببینید ما شو نمی‌دیم ما اجازه بدین، اجازه بدین این وقتی که می‌ذاریم برای اینکه خوش اومدین، خوش ببینید شو نمیخوام بدیم ما. ما واقعا میخوام دوستانی که چیزدارن، اجازه بدین، اجازه بدین من واقعا میخوام دوستانی که مشکل دارن خوب دقت کنن. اشکالات کلامی فکری و مسئول خودشون رو پیدا کنم من هر کدوم از این دوستان بیام بالا بیارمشون اینجا شما خودتون متوجه میشین که اشکال چیز دارن از ما یک چیز دیگه گفتیم اونا دارن اصلا یک کار دیگه میکنن و از این محصول تشریفه اینجا نور میخواد چشم رو نزنه از کنم خدمتتون که یه توضیح نمیخوام خوب شما اگه میخواید همین جواستی که نور چشم رو نزنه مایلین یه توضیح کوتاه بدین یه توضیح کوتاه بدید و همون ماجرا رو بگید که چیکار میکنید همون بحث نظر و همه این الان روشنه بفرمایید البته اگه اجازه بدین من یه سوال دارم اینجا یه چیزی برای من گنگه اونجا که من به این نمونه اومدم که من قفل ذهنی دارم من این ادعا رو ندارم که دوستان من قفل ذهنی دارن من قفل ذهنی دارم یعنی من باور نکردم چه این خانم دوستان دستشونو بلند کردن و خب به نظر دوستان من ارتباط داشتن و به نظر بنده چون من این تجربه رو خودم نداشتم نکردم خب. خب. ولی این تجربه رو هم داشتم یعنی رو کسان دیگری کار کردم به فرمایش شما همین فرمایش که میفرمایید این ارتباط رو ازشون درخواست کردم روشنام کار کردم یعنی در شاهد بودن همه دوستان ما اینکه بنده اینجا اومدم و همه دوستان اومدن به نظر من میاد که همه ما شاهدیم بر این ماجرا هم وقت گذاشتیم هم اومدیم نه شد نه, نه نه باور بکنیم با اجازه بدیم من نو خیلی بخشید من بیام بالا ببینید ما مفهوم شاهد رو کمون بیش گرفتیم ولی باور بکنیم که در عمل این شاهد بودن و به همین سادگی این بیترف بودن یا تسلیم رو این مرتبه اول تسلیمه حالا بعدن مراحل بعدی تسلیم رو متوجه میشین و منظور تسلیم و اسلام و مسلمان و اینها رو هم بعداً با هم مد نظر قرار بدیم باور بکنید که دی ارتباط رو بغرا می ولی دارن تو ذهنشون تفسیر میکنن تفسیر میکنن چند نفر داریم خدا وکیلی این تعبیر و تفسیر رو تو ذهنشون داشتن چند نفر خودشون فهمیدن تعبیر و تفسیر که می‌کنی یعنی شاهد نیستی یعنی داری چیکار میکنی این مسئله رو پردازش میکنی من این قاشق غذای همین خانومو دارم میارم جلو که ایشون تست کنه هنوز من اینا نیوردم ایشونه ای داره میگه که حتماً دستپخت این خانم باید باشه حتماً باید اینجوری باشه یا یا هر چیز دیگه این تعبیر و تفسیر قبل تست ما رو چیکار میکنه از این مسئله جدا میکنه حالا ایب نداره بیایم شما خارج چیز انجام دادیم تجربه کردیم نشده. نشده حالا ایشون هم یه توضیح بدن و مطابق این قضیه ما ببینیم که نتیجه داریم یا نتیجه نداریم دوستان این تجربه رو با هم داشتیم خواهشم این کاری که رو که قبلا کردیم میخواییم انجام بدیم یه توضیح مختصری من از منظر خودم عرض می ما به این معتقدیم که این نظر رو داریم و بنده حالا از روزی آسمانی جناب تاهری به من انفاق شده و فرض میکنیم شما ندارید و من میخوام از این روزی به شما هم انفاق بکنم شرطی که داره خواهشم اینه برای اینکه تمرکزتون حفظ بشه برای اینکه به قولی در این تشتت فکری نباشیم که بالاخره بعضی مبتلا هستن به این جهت حالا ترجیحن جوری که راحت بنشینید جوری که خیلی نتونه حواستون رو پرت بکنه بنشینید و ترجیحاً چشماتون رو ببندید برای اینکه جلوی اون تشتر رو بگیریم و کاملاً به عنوان یک شخص شاهد یعنی تمام اندامهای بدن خودتون رو تحت نظر بگیرید اگر ممکنه اتفاقی بیفته جایگن بشه، سر بشه، سباک بشه، سنگین بشه یا هر اتفاق دیگری که در بدنتون میفته رو هم دقیقاً تحت نظر داشته باشه. پایش میکنم چشماتون رو ببندیم. من از بشکن دیگه خودداری می‌کنم. <تصفيق> خب شروع او <میکنیم؟ تصفيق> خیلی ممنون مچکل. خب سوال بکنیم که بعدت دوستان چطور بوده؟ دوستانی که اعتباتتون رو متوجه دشتن درشتون بلند کنن. خب. عفله ذهن من رو من ندیدم الان دیگه ببینید ببینید من الان اون دوستانی که دفعه پیش دستشونو بالا نکرده بودن باز هم نکردن من تصورا به اشتباه شاید این جناب بله. که شاید ایراد از بنده است یا شاید بالاخره رو کاریزمای جنابالی یا هر موضوع دیگه‌ای دوستان اینجا هستن که این آمادگی رو بیشتر رو دارن بنده یا شاید بعضی مثل اون خانم که داشتم بودن چند تا از دوستان ما من یک مطلب رو, رو میخوام خراس بگم خراس ببینید من یه مطلب میخوام بگم نه خیلی من اولا یه دست برشون بزنیم تا... یه لرزی یه لرزی یه لازه، یه, لازه، یه لازه. ببینید ما از این آزمایش یه چیز رو میخواستیم بگیم این آب میخواستیم آزمایش کنیم که شما فرمودی من در بیرون انجام دادم نشده درست شد یا نه من میخواستم بگم که اگر ما ده مورد رو ده مورد بعضی دوستان دو مورد کار کرد دو مورد سه مورد با دو مورد سه مورد معلوم نمیشه باید شما سعی کنید یه هفتش ده موردی کار بکنید خوب در اون صورت اگر انجام دادیم نشد اشکال از خودمونه در صحبت های فقط یک مورد اشکال داشتن اونم اشاره کردن به تمرکز خوب حالا البته قابل اقمازه اشاره کردن به تمرکز فرموندن که تمرکز کنید ما تمرکز نداریم تمرکز یعنی زندانی شدن در یک نقطه در یک چیز در یک جه در یک کلام ولی ما عکس تمرکز رو در اینجا داریم ما میریم به سمت گستردگی مثلا در ارتباط دوره 7 ارتباط گستردگی داریم یعنی گسترده شدن در سطح جهان هستی اگر شما الان به تمرکز عادت کنید ما اونجا مشکل داریم یا یعنی کسانی که به تمرکز عادت کردن و اینها ما بزلا باشون بعدن مشکل پیدا میکنین باید ذهن اونها رو چگاه کنیم؟ پاک کنیم، درست کنیم، روبراک کنیم. خب، بنابراین مسئله که هست شما اینجا دیدین که شد. این الان هم یه آزمایش بکنید. همه کاری که اینجا کردید بیرون انجام بدید. شما همینطور. کاری که اینجا انجام دادید عیناً بیرون کپی کنید. حالا من یه سوال دارم. اگه من یه کار دیگه‌ای بکنم همین احساس دوستان داشته باشن اسم اونام ارتباطه. یعنی اینکه ارتباط بدیم نگم بگم که خواهش می از دوستان چشمشون رو ببندن مثلا توجه به نحوه نشستنشون و نحوه تنفسشون بکنن برقرار میشه تقریباً همین ارتباط برقرار این برقرار میشه متوجه میشین کیفیات شاید روشهای هم شاید باشه این اشتباه من اشتباهه نمیدونم ببینید از کنم خدمتتون در تمام دنیا چقدر جهارو تنفس میشینن کار میکنن اجازه بدین؟ چقدر یوگا رو شام و رو موسیقی و رو مدیتیشن نمیدونم چی و کار می‌کنن آیا نتیجهشون همینه هر جریانی برای خودش نتیجه کار خاص خودشو داره توجه می‌کنید این مطلبی که قاگنجو نبود همه کسانی که می‌دونید در دنیا چقدر چند نفر رو تنفسشون چند نفر داریم در دنیا چقدر یعنی داریم که میدیتشن های مختلف روی تنفس روی اینا کار می کنن بنابراین نه شما اینه این قضیه رو بیرون ادامه بدین ببینید همین نتیجه رو شما خواهید داشت. خیلی ممنونم سپاس گذارم خوب دوستان عزیز چای رو ریختن سرد میشه. یک روب خواهش می کنم یک روب چون می خواهیم با هم صحبت کنیم یک روب زنگ تفریح